مارکیز برگشت، همچون همیشه از حسودی باران لذت می برد. او را بر و به ریشخند می گرفت روزهای خوش عشق دوباره از سر گرفته شد برادرم دوباره شاد شد ولی مارکیز از هر فرصتی بهره می‌گرفت تا برداشت تنگ نظرانه باران از عشق را به رخش بکشد. منظورت چیست؟ می‌خواهی بگویی که من حسودم؟ حق داری حسود باشی، اما مسئله این هست که می خواهی و حسودیت جنبه منطقی بدهی. البته، با این کارم تأثیرش را بیشتر می کنم. بیش از اندازه منطق به کار میبری. عشق را به استدلال چه کار؟ برای این است که بیشتر دوستت داشته باشم. قدرت منطق را می در هر عملی به کار گرفت و به آن نیروی بیشتری داد. با درخت ها زندگی می کنی اما روحیه میرزا به ها را داری. جسورانه ترین کارها را باید با روحیه صاف و ساده انجام داد. آنقدر از این گونه جمعه های دهان پرکن می گفت که ها از دستش می گریخت. انگاه سرگشته و دیوانه او را دنبال می جرد. در همان روزها یک ناو جنگی انگلیسی در بندرگاه ما لنگرند. در یا سالار آن، میهمانی به افتخار بزرگان امبروزا و افسران کشتی هایی که در بندر پهلو گرفته بودند، برپا کرد. مارکیز نیز به آن میهمانی رفت و بدبختی های برای کسیم آغاز شد. دو افسر دلباخته ی مارکیز شدند و پیاپی به خشکی می و گرده ویولتا تا تا دل او را به دست آورند. هر دو درجه نافبانی داشتند. و یکی در کشتی انگلیسی و دیگری در ناوگان نابل خدمت می کرد. دو اسبه که هر کرایه کرده بودند و پیاپی به خانه مارکیز سر می زدند. هر بار که یک دیگر را می دیدند، افسر ناپلی چنان چشم قره می رفت که انگار می خواست آن دیگری را تکه تکه کند. و افسر انگلیسی از لای پلک های نیمه نگاهی به آختگی نک شمشیر به او میانداخت انداخت. ویولتا چه می سران سر صبح را در خانه میماند و کنار پنجره می نشست. حال زن تازه بیوه شده ای را داشت که گویی نمی خواهد از دوره سوگواری بیرون بیاید. کوزیمو داشت دیوانه میشد. نه او را بالای شاخه ها کنار خود میدید و نه آوای تاخت اسب سفیدش را میشنید. شنید. سرانجام رفت و بر شاخه ای در برابر ایوان خانه ویولتا نشست و همه مدت کارش این بود که ویولتا و دو افسر را ببیند. در این فکر بود که نیرنگی بزند تا دو رقیب هرچه زودتر به کشتی خود برگردند. اما با دیدن اینکه که ویولتا به هر دوی آنها به یک اندازه روی خوش نشان می دهد، امیدوار شد که شاید بخواهد هر دوی آنها و نیز خود او را به بازی بگیرد. با این همه همچنان آنان را زیر نظر داشت تا با دیدن نخواستی نشانه گرایش ویولتا به یکی از دو افسر دست بگار شود. روزی از روزها افسر انگلیسی از راه رسید. ویولتا کنار پنجره بود. به هم لبخند زدند. مارکیز کاغذی را پایین انداخت. افسر آن را در هوا گرفت. خاند، سرخ شد و سرخم کرد و به اسب خود مهمیز زد و رفت. با هم قرار گذاشته بودند. پس به افسر انگلیسی بیشتر گرایش داشت. کوزیما با خود پیمان بست که نگذارد افسر آن روز را آسوده به شب برساند سپس افسر ناپلی آمد. ویولتا باز کاغذی را پایین انداخت. افسر آن را خواند و به لب برد و بوسید. پس خود را برنده می دانست؟ آن دیگری چه می شد؟ کزیما باید با کدام یک از آن دو در می افتاد. بیشک ویولتا تنها با یکیشان قرار گذاشته بود و گونه که عادت داشت دیگری را به بازی گرفته بود. یا شاید می خواست هر دوشان را به بازی بگیرد؟ کوزیمو حد میزد که جای قرارشان ساختمان کلاه فرنگی دورافتاده ته باغ باشد. ویولتا تازه باس کرده و در آن اساسه گذاشته بود. خود همان ساختمان مایه رشک کوزیمو بود. دیگر آن زمان گذشته بود که ویولتا بالای شاخه ها را با مبل و پرده می‌آراست. اکنون به جاهایی میپرداخت که پای کوزیمو نمیتوانست به آنها برسد. برادرم با خود گفت: آن چرازی زیر نظر می گیرم؟ اگر با یکی از افسرها قرار گذاشته باشد، جز آنجا جای دیگری نمیتواند باشد. رفت و در میان شاخ و برگ پرپشت یک شاه بلوط هندی جا گرفت. اندکی پیش از غروب صدای تاخت اسبی شنیده شد. افسر ناپلی از راه رسید. کوزیمو بران شد که خشم او را برانگیزد. با لوله بلندی که همراه داشت، از سرگین سنجاب را به سوی او پرتاب کرد که به گردنش خورد. افسر برجا جهید و نگاهی به پیرامون خود انداخت. کزیمو از لای شاخه ها سر کرد و چشمش به افسر انگلیسی افتاد که در آن سوی بوته ها از اسب پیاده شد و دهانه آن را به تیرکی بست. پس با افسر انگلیسی قرار دارد. آن یکی اتفاقی از اینجا میگذشته. سرگین دیگری به سوی افسر انگلیسی پرتاب کرد که درست به بینیاش خورد افسر گفت: کی بود؟ خواست از میان بوته ها بگذرد که ناگهان با افسر ناپلی روبرو شد او نیز از اسب پیاده شده بود و می گفت کی بود؟ افسر انگلیسی گفت میبخشید سرکار از شما میخواهم که فورا از اینجا بروید افسر ناپلی گفت همین که اینجا هستم یعنی که حق دارم باشم من باید از سرکار بخوام که از اینجا بروید هیچ حقی برتر از حق من نیست متاسفم که نمیتوانم اجازه بدهم اینجا بمانید پای شرف و حیثیت من در میان است من سالواتوره دی سانت دیسانتا دی سانتا ماریا کاپو افسر نافگان پادشاهی دو سیسیل من سر ازبرت کاستر به خاطر شرف خانوادگی مجبورم شما را از اینجا بیرون کنم تا شما را با این شمشیر از اینجا بیرون نکنم خودم نمیرفم شمشیرش را بیرون کشید و گفت خودتان را برای نبرد آماده کنید آقا سر آزبرت نیز شمشیرش را کشید و به حال آماده درآمد. نبرد آغاز شد افسر ناپلی گفت مدت ها بود که منتظر چنین روزی بودم. همکار عزیز. و به سوی حریف خود خیز برداشت. سر آزبرد یورش او را پس زد و گفت مدت ها بود که شما را زیر نظر داشتم سرکار و اینجا منتظرتان بودم. هر دو نیروی برابر داشتن و یورش پس ها و هایشان پایانی نداشت. در اوجه کارزار بودند که صدایی به گوششان رسید. شما را به خدا دست نگه دارید مارکیز ویولتا در درگاه ساختمان کلاه فرنگی پدیدار شد هر دو افسر در یک زمان شمشیر خود را پایین انداختند و هر کدام دیگری را نشان دادند و هم صدا گفتند مارکیز, مارکیز ایشان. ایشان مارکیز گفت دوستان عزیزم شمشیرهایتان را قلاف کنید خواهش میکنم چرا میخواهید مرا بترسانید؟ از این ساختمان برای همین خوشم میآید که جای و دور افتاده و بیسر و است. اما هنوز سرم را به بالش نگذاشته، صدای شمشیرهای شما مرا از خواب پراند. افسر انگلیسی گفت ولی بانوی من، مگر شما نبودید که مرا به اینجا دعوت کردید. افسر ناپلی گفت برای دیدار با من به اینجا آمده بودید بانوی من. خنده ای به نرمی آوای پر پرنده از گلوی ویولت تا است. آه درست است شما را دعوت کرده بودم یا شما را وای که چقدر گیجم پس منتظر چه هستید بفرمایید خواهش می کنم بنشینید افسر انگلیسی گفت بانوی من تصور من این بود که مرا تنها دعوت کرده اید اشتباه کرده بودم با کمال احترام اجازه می مرخص شوم من هم میخواستم همین را بگویم و اجازه مرخصی بخواهم مارکیز میخندی. دوستان من، دوستان عزیزم. آه که چقدر فراموش کارم؟ فکر می کردم با سر آزبر در یک ساعت و با دون سالواور در ساعت دیگری قرار گذاشتم. نه نه آذر میخوام مثل اینکه با هر دو در یک ساعت و در دو جای متفاوت قرار گذاشته بودم. اه, اما نه اینکه عملی نیست. <تصفح> خیلی خوب حالا که هر دوتان آمده ای چطور از بنشینیم و دوستانه گپ بزنیم. دو افسر نگاهی به منداختند و رو به مارکیز کردند. آیا درست فهمیده ایم که تنها به این خاطر به ما توجه نشان دادید که بتوانید بهتر مسخره امان کنید؟ چرا این فکر را می کنید دوستان من؟ درست برعکس، برعکس نمی توانستم در مقابل آن همه پافشاری شما بی تفاوت بمانم هر دوتان دوست داشتنی هستید اگر برا زندگی سر آسبرت را انتخاب می کردم شور و گرمی دن و را از دست می دادم سر آزبرت عزیز، آیا باید به دنسال با طور قناعت میکردم و از شما چشم پوشیدم؟ چرا؟ بهتر نیست که... هر دو افسر با هم پرسیدند؟ بهتر, بهتر نیست, نیست که... که... چه؟ مارکی سرش را پایین انداخت و گفت بهتر نیست که مال هر دوی شما باشم صدای به هم خوردن شاخه های شاهبلوط هندی شنیده شد کوزیمو نمیتوانست بیش از آن خود را مهار کند ولی دو افسر آنچنان یکی خورده بودند که آن صدا را نشنیدند هر دو یک قدم پس رفتند این غیر ممکن است خانم مارکی سربلند کرد و با لبخند بسیار شیرینی گفت خیلی خوب پس مال اولین کسی از شما دو نفر خواهم بود که برای اینکه نشان بدهد چقدر مرا دوست دارد و خوشحالی مرا می‌خواهد اعلام کند که حاضر است با دیگری شریک باشد. هر دو افسر قرنش خوشگی کردند و از در بیرون رفتند. هنگامی که تنها شدند، رو به هم کردند و دست یکدیگر را فشردند. مطمئن بودم که شما نجیب زده اید، سینیور کاتلد. شک نداشتم که افسر با شرفی هستید. میستر ازبرد. بیان نگاهی به مارکیز بیاندازند به سوی اصبهای خود رفتند. ویولتا به صدای بلند گفت دوستان من چرا ناراحت شدید؟ احمق ها! اما دو دیگر به اصبهای خود رسیده بودند و پا به رکاب میگذاشتند. کسیما درست منتظر همین لحظه بود و از پیش پیروزی خود را مزه مزه میکرد. تلیه دردناکی را برای دو افسر تدارک دیده بود ولی چون دید که آنان شرافتمندان از ویولتا جدا شدند ناگهان کینه را از دل راند اما کار از کار گذاشته بود دیگر نمی توانست آنچرا که کار گذاشته بود بردارد از این رو بیدرنگ بران شد که آن دو را خبر کند از بالای درخت فریاد زد صبر کنید روی زین ننشینید دو افسر سر بلند کردند. ان بالا چه میکنید؟ چه کار دارید؟ چه میخواهید؟ بیاید پایین. خنده مارکیز ویولتا پشت سرشان تنین انداخت. دو افسر درمانده بودند، چون این نمی‌نمود که دزد سومی آن صحنه را تماشا کرده بود. و از هر چه بقرنج‌تر میشد. به هم گفتند: در هر حال ما هم ایم. قول شرف هیچ کدام ما نمیپذیریم که در عشق مارکیز با کسی دیگری شریک باشیم. هرگز؟ اما اگر یکی از ما پذیرفت... در هر حال همیشه هم بسته ایم. اگر پذیرفتیم، هر دو با هم. قبول. پس برویم. با شنیدن این گفتگوی تازه، کزیما از دلسوزی برای آنان پشیمان شد. گفت، هرچه باد آباد. و به میان شاخ شاخو کار رفت. دو افسر روی زین نشستند. کزیما با خود گفت، الان جیغ میکشند؟ دلش خواست گوش هایش رو با دست بپوشاند. صدای نعره دو افسر بلند شد. زیر زین پوش هر کدام از اسبها یک جوجه تیغی پنهان بود. اه خیانت! همچنان که نعره میکشیدند و به خود میپیچیدند از اسب این جزدند. نخوست بران بودند که به سراغ مارکیز بروند ولی او هم مانند آنان از آن رویداد به خشم آمده بود. روبه نکه درختان کرد و فریاد زد. بوزینه یه وحشی! به سوی شاه بلوت هندی خیز برداشت و با چنان شتابی در میان شاخ و برگا گم شد که انگار بخار شد و به هوا رفت. ویولتا و کازیما بالای شاخه ها به هم رسیدند. با چشمان آتش بار به یک دیگر خیره شدند. خشم و شور به هر دوشان حالتی پاک و فرشتهوار می داد. چون می نمود که با هم درگیر خواهند شد. اما ویولتا ناگهان گفت آه عزیزم می خواهم همیشه اینطور باشی حسود و بیقرار. بازویش را در گردن کازیمو انداخت. یک دیگر را در آغوش گرفتند و کازیمو برای یک لحظه همه چیز را فراموش کرد. سپس ویولتا خود را پس کشید. چهرش را از چهره کازیمو دور کرد و گفت اما آنها هم خیلی مرا دوست دارند میدانی؟ هاگران مرا بین خودشان تقسیم کنند. کم مانده بود که کازیمو خود را روی او بیاندازد. بلند شد و روی شاخه ایستاد. چند برگی را به دندان گزید. سر خود را به تنه یه درخت کوبید و گفت: ارزش یک پشه را هم ندارند. ویولتا باز از او دور شد. چهرش به حالت سنگ درآمد. گفت: خیلی چیزها باید از آنها یاد بگیری. پشت کرد و به شتاب از درخت پایین رفت. دو دادی او درگیری خود را از یاد برده بودند و سرگرم کندن های جوجه تیغی از تن یکدیگر بودند. ویولتا گفت: "زود باشید، سوار کارسکی من بشوید." به پشت ساختمان رفتند و کارسک به راه افتاد. کزیما بالای همان درخت چهره خود را با دو دست پوشاند. دوره ای از رنج و پریشانی برای کزیما و نیز برای دو افسر آغاز شد. ولی آیا برای ویولتا دوره خوشی بود؟ کمان من این است که او تنها برای آثار خود دیگران را آزار میداد. دو افسر در همه جا، پای پنجره ویولتا، در خانه او، در مهمان خانه، همواره با هم بودند و از هم جدا نمی شدند. ویولتا به هر دوشان روی خوش نشان میداد و پیاپی میخواست که با کار تازه‌ی عشق خود را به او نشان بدهند و آن دو همواره آماده بودند. کارشان به جایی رسیده بود که میپذیرفتند در عشق او با هم و حتی با کسان دیگر شریک باشند. و از آنجا که به سراشی به سازش و تمکین افتاده بودند، دیگر هیچ چیز جرادارشان نبود. همه انگیزهشان این بود که سرانجام دل او را به دست آورند تا به قولی که داده بود وفا کنند. و در همان حال، به خاطر سوگندی که با هم خورده بودند، هم بسته بودند، هم از حسودی می و هم از این آرزو که سر انجام پیروز شوند و از آنجا که خود نمی به چه ورطه ای افتاده اند، رنج بسیار می کشیدند. هر بار که می پذیرفتند کار تازهی بکنند، ویولت تا سوا به خود می شد و میرفت تا این را به کازیمو بگوید. با دیدن او که قمزده بالای شاخهای کس کرده بود فریاد می زد. می افسر انگلیسی حاضر شده فلانکار را به خاطر من بکند افسر ناپلی هم همینطور. طور چیزی نمی گفت ویولتا می گفت عشق مطلق یعنی همین کوزیمو فریاد میزد. خریت مطلق یعنی همین همهتان گم شوید و در میان شاخ و برگ ها ناپدید میشد. شد اشقشان دیگر به صورت این رابطه سنگ دلانه در ناو انگلیسی لنگر برچید. ویولتا از سر آزبرت پرسید. شما میمانید مگر نه؟ افسر انگلیسی نرفت و او را فراری دانستند. همبستگی و رقابت دون سالواتوره را نیز واداش که فرار کند. ویولتا به سراغ کزیمو رفت و پیروز گفت. هر دوشان از خدمت فرار کردند. به خاطر من. اما تو؟ کزیمو نعرزد. اما من؟ چنان نگاه خشمگیی به ویولتا انداخت که او دیگر چیزی نگفت. سر آزبرت و دون سالواتوره، افسران فراری ناافگان های انگلیس و ناپل، همه یه وقت خود را در مهمان خانه می نگران و رنگ پریده با هم نرد میباختند و میکوشیدند از یکدیگر ببرند. در آن حال ویولتا در اوج ناخش نودی بود. هم از خود، و هم از همه ی آن چه در پیرامون داشت به تنگ آمده بود روزی سوار بر اسب شد و به جنگل رفت کزیما بالای مازویی نشسته بود ویولتا در چمنزار زیر درخت ایستاد. دیگر به تنگ آمدن از آن دوتا؟ از همه اتان. آها هر نشان دادن که دوستم دارند کزیما توفی انداخت اما این برایم کافی نیست. کوزیمو به او خیره شد و او گفت: فکر کنی که عشق باید به معنی از خود خودگذشتگی مطلق باشد؟ یعنی اینکه آدم باید خودش را به حساب نیاورد. در چمنزاری ایستاده بود. از هر زمانی زیباتر نمود سرد مهریش چندان اثری بر شیرینی چهره و برازندگی قامتش نمیگذاشت. چندان چیزی لازم نبود تا آن سردی را به کنار بگذارد و خود را به آغوش کازیمو برساند. بسنده بود که کازیمو برای آشتی چیزی بگوید هرچه باشد. مثلا بگو میخواهی چه کار کنم آمادم. آنگاه دوباره به خوشبختی میرسید. خوشی که هیچ زنگاری نداشت. ولی به جای آن کازیمو گفت. عشق فقط زمانی ممکن است که آدم خود خودش باشد. با همه نیرویش. ویولتا حرکتی از سر دل زدگی و درماندگی کرد. با این همه هنوز می توانست او را بفهمد و میفهمید. حتی بیشتر از این در خواست بگوید تو را همین طور که هستی دوست دارم و سپس به سوی او برود. ولی لبگزید و گفت: خیلی خوب. پس خود خودت باش و تنها باش. کوزیمو خواست بگوید در این صورت دیگر معنی ندارد که خودم باشم ولی در عوض گفت: اگر آن دو پشه را ترجیح می دهی، ویولت داد زد. اجازه نمی دهم دوستانم را اینطور تحقیر کنی. ولی پیش خود می گفت، برای من فقط تو وجود داری. همه این کارها را به خاطر تو می کنم. فقط من سزاوار تحقیرم. تو نه، فکرت. من و فکرم هر دو یکی هستیم. پس برای همیشه خداحافظ. همین امشب می روم و دیگر مرا نمی بینی. به شتاب به ویلا رفت. بارو را بست و به راه افتد. به دو افسر چیزی بگوید. بر سر آن چه گفته بود ماند. هرگز به امروزا بر نگشت. به فرانسه رفت و هنگامی که دیگر نتوانست خود را مهار کند و خواست برگردد رویدادهای آن کشور نگذاشت. انقلاب و سپس جنگ شد. مارکیز که از نزدیکان لافایت شده بود و رفته رفته به آن رویدادها علاقه نشان میداد به بلژیک و سپس انگلیس رفت. در چند سالی که جنگ های به درازا کشید در لندن مهالود به سر میبرد و دلش هوای درختان عمراز را داشت. سپس همسر یک لرد انگلیسی شد که با کمپانی هند شرقی کار میکرد و در کلکت ماندگار شد. از ایوان خانش جنگل ها را تماشا میکرد. و را که از درختان باغ دوران کودکیش نیز شگرفتر بود. و هر لحظه چونین میپنداش که ما را میبیند که از لابلای شاخ و برک ها پیش میآید اما آنچه به چشمش میآمد آمد پلنگ یا میمونی بیش نبود. سر آزبرد کستلفایت و سالواتور دیسان کاتالدو برای همیشه هم بسته ماندند با هم به ماجراجویی رفتند. سر از گمارخانه های ونیز، مدرسه علوم دینی گوتینگن و دربار کاترین دوم در سن پترزبورگ در آوردند و دیگر خبری از ایشان نشد کوزیمو زمان درازی بالای درختان پرسه میزد. ژنده پوش شده بود و پیاپی گریه می کرد و لب خوراک نمیزد. چون نوزادان به صدای بلند گریه میکرد. پرندگانی که پیشترها با دیدن آن شکارگر خطانا میگریختند اکنون به اون نزدیک میشدند و روی همان درختی که او بود می نشستند. یا از بالای سرش می پریدند. ها و سهره و قمری ها و باسترک ها و چلچل و فاخته ها را می خوندند. سنجاب ها و خزه ها و موش های از جرف‌های های بیرون می‌آمدند و با آنها هماوامی شدند. و بدینگونه هر کجا که برادرم می رفت انبوهی از ناله همراهش بود. سپس دچار خشم ویرانگری شد. برک های درختان را از سر تا به زیر می کند و آنها را چون درختان زمستانی لخت می کرد. سپس به جان ترکه ها و شاخه های نازک می افتاد. آنگاه با چاقوی خود پوسته درخت را می کند و سفیدی تن آن را نمایان می کرد. پس از یورش او، درختان چنان حالت زخمی داشتند که با دیدنشان پشت آدم می درزید. آن همه خشمش هیچ نشانی از کینه به ویولتا نداشت بلکه بیانگر پشیمانیش بود از اینکه او را از دست داده بود. نتوانسته بود نگهش دارد. با قرور نابجا و ابلهانه خود او را رنجانده بود. زیرا تازه در می که ویولتا همواره به او وفادار مانده بود. آن دو مرد دیگر را برای همین به دنبال خود می کشید که نشان دهد تنها کوزیمو را معشوق خود می داند. همه بیتابی ها و حوص بازی ها نشان عتش سیری نپذیرش به دامن زدن به عشق خودشان بود. عشقی که در اوج خود بود اما ویولتا نمی خواست به آن اعتراف کند. ولی کوزیمو از این همه چیزی در نیافته و او را رنجانده وازده داده بود. چند هفته ای را تنها تر از همیشه در جنگل به سر برد ویولتا اپتیموس ماکسیموس را نیز با خود برده بود هنگامی که به اون برگشت، به برگشت بسیار دگرگون بینه دیگر خود من هم شکی نداشتم که برادرم دیوانه شده است